سوند دانلود تقدیم میکند. میانمار آتشو جنگ است اینک سکوت مسلمین ننگ است اینک بشر در سکوت مرگبار است حقوق در بشر سرفنش آور است حقوق در بشر سرفنش آور است. میان آتش و جنگ سکوت مسلمین ننگست اینند بشر ان در سکوت مبار است در بشر شعر است حقوقند در بشرصرفا شعار است به آتش میزنند اجساد مسلم نمی زد به نسرت داد مسلم زه هر گ او هر عفت ربودند روی مادران آتش کشودند به روی مادران آتش کشودند ما میان آتش و سکوت مسلمین ننگستینک بشر اندر سکوت مدبار است حقوق اندر بشر صرف شعار است حقوق اندر بشر صرف شعار است, است شده بریان تنه پاک برادر بدر در خاک مدفون است و بی سر شود محو پنا استهری هستی ندارد جور مجوز یک تا پرستی ندارد جور مجوز یک پرستی میان جنگ استین سکوت مسلمین لنگاستین بشر اندر سکوت مربارغ است حقوق اندر بشر صرفن ان شعور است اندر بشر صرفن ان شعار است تجاوز می شود ناموس مسلم شده مرگو و عزا کابوس مسلم مساجد می شود تخریب و ویران به بی آتش می کشند پیوست قرآن به آتش می کشند پیوست قرآن میان می می انمر آتش و جنگ استیند سکوت مسلمین ننگ بشر اندر سکوت مربار است حقوق در بشر صرفن است بیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخان سوزد همه اش آتش و دود همه اش اشک و خون همه اش بیخان و مانگی همه اش مردن دست جمعی اینجا آشفتہ بازار است بخشیگری و داد منشی از حد و مرز گذشته بوداییان متحسب این خار چه ها که نه سازمان حقوق بشری است و نه سازمان مللی و نه حکام مسلمانی که قیام کنند و به دفاع برخیزند جهان در سکوتی به ثابر فرو رفته مسلمان بی‌دفاع میان ماری در آتش بوزایان زنده زنده سوزانده و خاکستر می‌شوند پس ای مسلمان به بپاخیز با دعا با آه و ناله هایت با اشک های سحرگاهت آتش این شین توزان را خاموش گردان ندا بیا وقت جهاد است ندا بیا وقت جهاد است ندا بیا وقت جهاد است ندا بیا وقت جهاد است